ایران ویج بازنگری در تاریخ قلم روه میانیم لودینگیرا یک شاعر سومری. بله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 یعنی شما یه خاصی رو ندیدین؟ قطعا دیدن. خب از این واضح‌تر من نمیفهم کتیبهش دیگه هست. اصلا کتیبه با همون خط و تشکیلاتش هست. ترجمه هم شده. حالا اگه بهشون بگی یکم یک فشار بیاری میگه معلوم نیست شق سومر شاید از ژاپن جای آمده دوره جمشید از این لحاظ برای ما خیلی های اهمیته که ما میخوام یه ادعای بزرگ رو این دوره بکنیم. ادعای ما چیه؟ هدای ما اینه که زمان جمشید دوره‌ایه که همه آریاییان که اروپایی‌ها ها میان هند و اروپایی دارن با هم زندگی می‌کنن هنوز اصلاً جلوه نشده. و این سند مووسع کامل‌ترینش است ایرانیاست نه حتی هندی ها به این قشنگی و این کاملی نیست دست اروپاییان به هیچ ای به این کاملی نیست کامل‌ترین سندی که از جمشید دستش دستمون است مصری‌ها هیچ گزارشی از سلمان ندارن شما در اسطوره رودان و هند هیچ گزارشی چیزی که سرما آمد ما مقابله کردیم میگم خدای فلان کمک کرد از اینا ابدا اما جالبه در همه اینا علاوه بر گزارش درون فلات گزارش سیل دادن همشون داره همشون هم در یک تاریخ مشخص به نام ایزد ای اکتاب با عرض سلام و و احترام خدمت همیهنان گرامی همراهان صدای امید از سامانه اینترنتی www.sodaiaomid.com در خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی هستیم. خدمت علاقمندان برنامه ایران ویج سلام گرم و ویژه داریم. در قسمت بیستوم این برنامه در خدمت شما هستیم. در نشست بیستم ما میخواهیم به دوری جمشید بپردازیم. در دو دوره گذشته در دو نشست گذشته ما مقدمات ورود به بحث دوره جمشید رو فراهم کردیم ما علاوه بر یازده قسمت مقدماتی که برای شما شنوندگان اگرامی گرفتیم و صحبت کردیم و نشست داشتیم در هشت برنامه دیگر سعی کردیم مبانی و همچنین اصولی که میخواهیم در رابطه با بازخانی تاریخ قلم روی میانی و رسم نوار تاریخی این قلم رو رو خدمت شما بودیم، در یک برهه تاریخی یعنی که دا تقریبا کارشناسان برنامه اتفاق نظر داشتند در مورد تاریخ اون و به صورت نسبی سال اون حتی. میخواهیم به یک نقطه تاریخی دیگه هم بپردازیم تا اینکه با رسم این نقاط تاریخی، نقاط قبل و نقاط بعد اون رو مورد کنکاش قرار بدیم بر اساس اسناد مختلف اسناد زبان شناسی، اسناد تاریخی، اسناد باستان شناختی، اسناد زبان شناختی، اقلیم شناسی، اسناد زمین شناختی بر اساس این علوم و اسناد مختلف این اسناد رو مورد بررسی قرار بدیم تا اینکه یک بازخانی جدیدی از تاریخ این قلم رو خدمت شما شنوندگان عزیز بگیم تا اینکه تلنگوری باشه برای شنوندگان گرامی و به خصوص نسل جوانی ایرانی برای مطالعهی مجدد تاریخ و نقادی تاریخی که براشون در دبیرستان و دانشگاه تدریس شده ما یک نکته تاریخی رو دو سه برنامه است که می روش زوم بکنیم هنوز مقدمه رو گفتیم میشه دوره تاریخی بسیار حساس هست و بسیار پر و بسیار مهم که در موردون اسناد بسیار زیادی هست در تمدن های مختلف در خود تمدن ایران و باستان که اسناد فتو فراوان و در اسناد تمدن دیگر تمدن که در سایه تمدن ایرانی به وجود آمدند حتی تمدن که دورتر از تمدن ایرانی هستند ما مابهزاها و منابع زیادی در مورد تاریخ دوری جمشید داریم که در تاریخ ایران باستان به تاریخ دوره طلایی معروف هست خیلی خوشحالیم که در این برنامه هر چهار میهمان گرامی هر چهار کارشناس گرامی در خدمتشون هستیم و میخواهیم بحث رو به طور جدی در مورد اسناد دوره جمشید شاه مورد بررسی قرار بدیم من اجازه میخوام از جناب آقای ایران شروع کنم که بحث دوره جمشید رو شروع کردند البته در قسمت گذشته یه سری اسناد و یک سری مسائل و شبه هایی که در قسمت های گذشته مطرح شده بود همیشون پاسخ دادن جوابقا ایران مهر اگر از برنامه‌های های گذشته شما مسله اگه هستش بفهم اگه نیست مجددن به بحث دوره جمشید بپردازیم تا اینکه ادامه بدیم بحث را. خواهش میکنم درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی. بند اینو بگم که بنده به بحث جمشید نشست پیش و نشست پیشم گفتم ورود نکردم. بله جای چون عرض کردم که اگه میخواستم جمشیدو خودم بگم که خب تو خونه برای خانوادم میگفتم دیگه نیازی نبود بیام اینجا تنهایی بگم ما میخوایم اینو به بحث بذاریم به نقد بذاریم ما بحث و همینجور زمینی گفتیم چون یک شواهدی داشت هنوز به اتفاق نظر کامل هم نرسیدیم شاید هم نرسیم بنابراین گفتیم خیلی خب می‌ریم یک نقطه دیگه الان منتظر بودیم تا کارشناسا همه جمع بشن که بتونیم بحث کنیم الان دیگه میخوایم وارد بحث جمشید بشیم بله من دوستان خواهش می کنم مطالبشونه کاملا مبسود بگن هیچ عجله ای نکنند تو این نشست نشست آینده و 4 پنج ده نشست آینده هم میشه درباره جمشید صحبت کرد صحبت کرد و سخن گفت دوره جمشیدو اگه بتونیم حل کنیم نوار تاریخی دونه دونه حل میشه اگر دوره جمشیدو نتونیم حل کنیم به ناچار باید بریم های دیگه و بعد در یک نوبت دیگه دوباره برگردیم سراغ جمشید این نقطه خیلی حساسیه یعنی حیاتیه. دور جمشید اگه حل بشه موضوعش بقیه نوار تاریخی حل میشه. من بازم تاکید میکنم ما نه نوار تاریخی را از اول تا آخرش میخوایم داستانوار بگیم. میبینیم که پراکنده میبینیم سراخش. بله بر اساس اون اسناد محکمتر هر کدوم داریم میبینیم سراخش. میخوایم نقاط ثابت و مشخص کنیم. اون جورچین وسط اینا رو بچینیم. این یک نکته. یه نکته دیگه اینکه الان کارشناسا همشون هستن. اینو میگم اینی که ما فقط زمان اینها رو مشخص کنیم تا تهش بریم در پایان پشیزی ارزش نخواهد داشت بدون اینکه علاوه بر زمانیابی ما مکانیابی هم بکنیم جغرافیا و بومنگاری این تاریخ رو هم باید مشخص کنیم بالا اصلا تو یکی از قسمت ها بنده خودم منم عرض کردم که تاریخ سه تا بردار داری. یکی زمان هست یکی مکان هست که منطق تاریخی یعنی نه تنها زمانش باید مشخص شه منطق تاریخی هم باید مشخص بشه که آیا مثلا ما میگیم مثلا جمشید در فرانسال هست آیا منطق تاریخی منطق تاریخی منظور مثلا شواهد مختلف علوم و مختلف زمین شناسی زبان شناسی اقلیم شناسی و حتی مثلا فلس شناسی همه اینها باید با سنگ شناسی که آیا اصلا امکان داره چنین چیزی در این برهه تاریخ و در این زمان و در این مکان داره اتوار. بیفته یا نه؟ میکنم. وقتی میگی منطقی باشه معنیش اینه که یعنی زورکی نمیشه, نمیشه. نمیشه. که من اینو میگم دیگه حالا شما میخواییم بپذیری نپذیری حالا گیریم که اصلا ما بپذیریم وقتی که کلیت شنوندگان کلیت پژوهشگران گوش میکنن با اون چیزایی که من نشانهایی که من دادم قانع نمیشن اون دیگه حالا من صد به این اصرار کنم بس زورکی نمیشه من... اون. بردار سومش که منطقش هم پس زمانیا بیم میکنیم مکانیا رو دوستان فراموش اصلا نکنن و منطقش هم باد درست باشه یعنی نشانه ها باید پشتیبانیش کنن بل. خدمتون بگم مثال میزنم در گزارش ها داریم که ایران در کنار دایتی دا دایتی بله بله خب. او همه میدونن کنار رود رو دایتیه خیلی خوب رود دایتی کجاست ولی هم مکانیا باید بیش رود دایتی کجاست باید. 90 درصد بالای 90 درصد میگن در آسیه میانه آسیه من, من یه بار من. گفتم که هر گرهی تو تاریخ ایران هست گیر میکنن نمیدونن چی بگم میان آسیه میانه است راحت من نمیدونم این آسیه میانه چی داشته که تو طول تاریخ همه میدویدن اونجا همه جمع شدن اینجا همه میامدن پایین از بین میرفتن اما فقط اون کانون جمعیتی تو آسیه میانه باز باقی میمونده بعد باز دوباره میامده این ای مثل بختک افتاده تو تاریخ ما هر هر نقطه گنگی داره تا میگه کجا بودیم که آسیای میانه بوده سر دایتی هم همین بلا اومده آقا کجاست نمیدونه دایتیه آسیای میانه است دیگه دایتی اونم هم حتما هم. همه همه آسیای میانه بودن اونم حتما آسیه راحت اصلا این‌جار همه چی با آسیای میانه حل میشه خوب آسیای میانه رو روسا ساختن وگرنه ما تاریخمون رو به کجا بند می‌کردیم دقیقاً دیگه, دیگه چارچخشو هوا بود دیگه بحث جمع خدمتتون بگم که گزارش که زیاده اما گزارش که من خودم روش تکم میکنم ببینید گزارش مثلا توی بندهش از جای دیگه هم هست تو منابع هندی هست در منابع ای هست هست همه جا هست تقریبا همش یک شکله من از آقای کریمی خواهش کردم یافته ای رو که پیش پژوهش کرده بودن اینو این برنامه خودشون زحمت بکشن بله. پنجوشو ارائه بدن خانم دکتر اون نشست ها فرمودن که در ملابه هندی ایرانی ها آنونا نامیده میشن آی کرمی پیش از نشست فرمودن که منبعی پیدا کردن که سومری ها به سرزمین ایران میگن انا بله این همون این همه ما لنگک میزنیم که یه قلم روی میانی همش یه پارچه هست نشانه ها شو دیگه بله نشانه همین نیست بله حالا من خودم تکیم روی این گزارش وندی داده. دوستان دیگه دیدین که از رو گزارش های متعدد اینها رو تقریباً به این شکل میگه. من حساب تکم روی وندی داده. ببینید آقای استیفن هاوکینگ رو همه اون فیزیکدان معروفی که الان اون بیماری پیش‌رونده عصبی رو داره با. و روی چرخ صندلی چرخ داره. به اوجوبه افلیچ. بله. چند سال پیش گفته بود که من بر لبه پرتگاه نیستی ایستادم و برگشتم دارم به زندگی نگاه می‌کنم. یعنی هر آن ممکنه فردا زندگی خاموش باشه. ایشون حدود سی سال پیش یک ای دادن. گفتن که سیاه چاله ها، مم. بلک هولز، تازم این نظریه پا گرفته بود و این داشتن میشناختنش. اینها مواد اطراف خودشون را میبلن و هیچ درصدی از اون رو پس نمیدن. یعنی وقتی رفت تو سیاه چاله دیگه بیرون نمی. سی سال تمام اختر فیزیکدان ها، تمام اختر شناس ها، تمام فیزیکدان ها دیشترشون مبانی و اصول حرفاشون گذاشتن روی این نظریه یعنی بر این مبنا توضیح دادن حدود 7 8 سال پیش استیفن هاوکینگ یک مقاله داد بیرون گفت یک کلمه گفت من 30 سال پیش اشتباه کردم محاسبات جدیدم نشون میده که وقتی که سیاچاله ها مواد رو می‌بلعن 30 درصد اون رو به صورت اطلاعات پس میدن صورت اشعه گاما ایکس اینا. بله یعنی کل اون ساختمان عظیمی که روی نظریه بنا شده بود اصلا فیزیک آنها دیوانه شده بودن ببینید این ته شجاعتی که آقا من اشتباه کردم نشانه های جدیدی به دست آمده که اینطوری نیست اونطوری در کار ما توی این بحث وندی داد دو تا فرگرد مهمش فرگرد اول و دومش که به کار ما میاد فرگرد دومش رو بحث میکنیم آی دکتر فرگرد اول وندیداد یکی از مهمترین منابع تاریخی ماست فرگرد اول وندیداد و عجیبه یکی از غلط اندازترین هاست یعنی اگر تو فرگرد اول وندیداد اشتباه کنی همون سی سال بادرها رو اشتباه بری بعد همم شجاعت استیون هاکینگ رو ندارم برگردم بگن اشتباه کردیم بله. میرن به 50-60-70 سالگی میرسن دیگه هم روش نمیشه به شاگردش داشت بگه من اشتباه کردم به همون رو هی ادامه میده من اینایی که تاریخ دانشگاهی ما کار میکنن هیچ حتی عجیب استادای شاهنام شناس استادایی که روی تاریخ روایی رو باوردارن هم متاسفانه من میبینم برگرد اول وندیداد رو اصلا یه چیز دیگه متوجه شدن شاید بگن چطور شد همه نفهمیدن تو یکی فهمیدی راخير اونها هم که اینو نوشتن میفهمیدن تعدادشون هم خیلی زیاد بود من نمیدونم امروز چطور شده که ما دچار این خلل شدیم یه اشتباه شدیم این فرگید رو هنوز من نتونستم بفهمم چرا یعنی یه چیز پیش چشم نوشته است اینا چرا دقت نمیکنن خانم دکتر احسانی یک حرفی گفتن واقعا هم تکان دهنده بود هم آدم ناراحت میشه گفتن یه فرضی میشه بعد هر یافته ای که میبینید تلاش میکنید تو ذهنت با اون فرض جوری پیچش کنی یه جوری جفت جورش کنی ببینید من اینو بعد خیلی بازش میکنم توضیح میدم. فرگرد اول وندیداد بندهای سه و چهارش یک بار دیگه میگم بندهای سه و چهار فرگرد اول وندیداد توضیح چکیده کل فرگرد دوم وندیداده هیچ ربطی به خود فرگرد اول نداره یه توضیحی داره میده به زرتوشت که آقا همچین چیزی شد ما با جمشید همچین داستانی هم داشتیم این بند سه و چارش دیگه هیچ ربطی به بندهای پنج و 6 بقیهش نداره بعد من اینا رو توضیح میدم باز میکنم میگم چرا نداره خدمتون بگم که بند سه فرگرد اول وندی داد دقیقا داره بندهای بیست و یک و بیست و دو از فرگرد دوم رو توضیح میده اینی داره به زرتشت میگه آقا جان ای زرتشت هم پرسگیه. اینو دوستان بدونن کسی از آسمون با زرتشت حرف نزده زرتشت میگه اون چه که میگم از خیردن برمیاد یک سروشیه به نام وهومن بهمن اینا رو به من تو ذهنم الهام میشه به من و طرف صحبت از زرتشت به یک کسی به نام مزد اهور است کسی از آسمون با این حرف نمیزنه ما که هی اینو میگیم دوستان توجه داشته باشین به هر همه اینها وقتی که گفته میشه اون چیزی که به ذهن زرتشت میرسه اینه که در فرگرد اول دارن به این میگن که آقا یک بابایی بود به نام جمشید به نام جمه هورچهر در بند سه فرگرد اول داره براش توضیح میده که ما همچی داستانوی با آقای جمشید داشتیم همچی اتفاقایی افتاد همین فرگرد اول دنبالش توضیح اینی که حالا تو بند سه ایران وی حالا راه افتادیم کوچ کردیم دیگه در بند مثلا پنج رسیدیم به سقت در بند شش رسیدیم به مرف در بند حرف رسیدیم به برخ. چون اصلا اساسا جمشید بر اثر سرما راه نیفتاد به سمت جنوب تو فرگرد دوم میبینیم میرن به سمت جنوب به دلایلی سه بار وقتی به داییتی میرسن میشینن انجمن میگیرن بعدن که داشتن زندگی میکردن بعد تازه بهش میگن آقا جان میخواد سرما بشه یه کاری بکن میگه چیکار کنم میگن مثلا این کارا رو بکن خب پس فرصت شما به پایان رسیده ده. اگر ما مایل باشید ما این قسمت از بحث شما رو به نشست بعدی منجر حتما حتما در واقع من گفتم ده 15 نشست دقیقا. شاید اگه درست برای بحث کنه جمع به دلایل غیر از سرما به سمت جنوب میان. اصلا فرگد دوم داره داد میزنه دیگه چطوری؟ غیر از رو. و در واقع بعد از سه دوری مهاجرت انجمن میگیرن که به دایتی میرسن. خیلی مهمه به دایتی میرسن, به دایتی به دایتی میرسن. انجمنی میگیرن و صحبت بعدن بهش میگه که میخواد سرما بیاد حالا ور بساز و اینا. حالا حالا چی کار بکنم؟ حالا, حالا, حالا, حالا کجا بریم؟ بله. بر اثر سرما پایین نمیان. متشکرم. پس این فرضیه شما رو ما همینجا در نظر می‌گیریم، در قسمت آینده هم منابع رو از شما میخوایم می همینجا دلائلتون رو میخوایم همین که ادامه بحث ما بعد از دو سه نشست خوشبختون در خدمت خانم دکتر هستیم. خانم دکتر در قسمت های گذشته از منابع هندی شروع کردن برای بحث های و ایرانویچ و در این قسمت هم ما چونکه که میخواهیم بحث دوره جمشید رو ادامه بدیم و این نقطه از قلم رو رو، این نقطه از تاریخ قلم روی میانی رو باش به یه توافق نسبی برسیم از ایشون هم خواهش میکنیم که مواس خودشون رو مطرح بکنیم درود به شنوندگان گرامی برنامه و دوستانی که حاضرند من فکر میکنم که برای اینکه بخوایم مبحث جمشید رو به یک شاید بتونیم بالاخره به یک جایی برسونیم خوبه که خیلی چون یه سری ویژگی های جمشید داره که توی متون هندی، تو اوستا، متون پهلوی ما، منابع ایرانی که پس از اسلام نوشته شدن، یه سری ویژگی داره که اونا به نظر میاد که یه چیزایی هستن که مشترکه. یعنی هر کسی که حالا این افسانه رو داستان رو روایت رو از هر جایی گرفته، این جمشید داستانش یه چیزایی داره که اینا تکرار میشه. فکر کنم بد نباشه که یکی این که آدم خب این شخصیت رو بررسی بکنه تو موتور مختلف و در نهایت برسه به اینکه که چه چیزایی در این شخصیت و در دوره زندگیش و در جایی که داره زندگی میکنه بر اساس روایت های مختلف چه چیزایی مشترک هستش و حالا از همین الان یک نتیجه ای را هم که من قبلا گرفتم شاید تو برنامه قبلی هم که بودم گفتم بله و الان به خاطر اینو میگم که میشه دنباله حرف آقای ایران مهر یکی از چیزایی که واقعا درباره جمشید من تا الان من نمیگم من هر چیزی که درباره جمشید وجود داشته در متون پس از اسلام و متون کهن و همه جای همه ها خوندم ولی تا اونجایی که مطالعه کردم واقعا این سرمایی که در دوره جمشید اتفاق افتاده که بر اساسش یک اتفاق بعدی افتاده که دیگه همون داستانهای کوچ و فلانه اینا باشه من پیداش نمیکنم جایی نمی دونم والا چی بگم شاید تنها منبعش همین وندیدات بوده که اونم حالا توضیح خواهند داد آقای ایران مهر منم واقعا نمی دونم منتظرم که توضیح بدن توضیح خواهند داد که چجوریه برد. که این منبع هم نمی که اول سرما شده بعدن جمشید جمشیت قبل از اون سرمایه بزرگ بوده بله دیگه اینجوری که گفتن ما اینطوری متوجه شدیم هم. ببینید من آغاز سخنم رو امروز میخواستم از این کتاب نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افثانهی ای ایرانیان بیارم که آرتور کریستنسن نوشته و خانم دکتر آموزگار رو شادروان احمد تفضلی ترجمهش کردن ترجمهشون هم ترجمه نیست فقط یعنی واقعا همه این منابعی که کریستینسن استفاده کردن کتابو demişه رفتن همه منابع رو نگاه کردن کلی به کتاب اضافه شده یعنی واقعا زحمت کشیدن براش نمیشه همین فقط گفت ترجمهش کردن خیلی کار فراتر از ترجمه است و آقای کریستینسن از حق که نگذرین واقعا منابع رو خوب جمع کرده یعنی مثلا همین مبحث جمشید رو شما اگر نگاه بکنید حتی یک شاعر ناشناسی اگه یه شعری هم گفته که مثلا یک رپتی خلاصه پیدا می‌کرده بین اسطوره اینا گردآوری کرده موتا یه چیزی اول بخش جمشیدش میگه یعنی اول بخش دوم کتاب که این خیلی جالبه من فکر کنم اینو اگر بخونیم و اینو بشنون شنونده ها بد نیست اول که خب حالا جمشیدو معرفی میکنه کاری نداریم میرسه به اینجا که میگه که با این همه استور که به بررسی افسانه یمع پرداخته و بیشترشان نقطه مبدع را در وداها گرفتند راه حل مسئله را در هنج استجو کرده و سپس کوشیدند تا به گونه گاه خوب و گاه بد افسانه اوستایی یمه را با نتیجه پجوهش های ودایی خود هماهنگ سازند. سازند اینم هم باز همون داستانیه که یه نتیجه داری و مطالعات که میکنی رو جوری به اون نتیجه برسونی میگه که اما پایه تحقیق را بر سرودهای ودایی گذاشتن یعنی بنا را بر شالوده بس کم استحکام نهادن این نظر ایشونه میگه که برای پکایت جمشید بهتر هستش که ما وداها رو پایه کارمون قرار ندیم چون که معتقده که بنابراین باید سنت ایرانی را اساس پجویش های خود قرار دهیم و بکشیم تا ضمن مقایسه اشارات پراکنده در ادبیات هندی و به ویژه وداها با داستان های عوستایی و کتاب های پهلوی که دنباله سنت عوستایی هستند اصلا تحول این شخصیت پر رو آشکار سازید. از دید این میگه که این استوره های هندی جمشید رو خوب منعکس نکردن. معتقده که استوره اوستایی خیلی جمشید رو با جزئیات بیشتر با دقت بیشتری و خیلی واضحتر این شخصیت رو نشون داده و یه مسئله دیگه ای هم که ما جلسه پیشراجه بهش حرف زدیم این بود که اصلا جمشید ودایی این که میگم باید یه سری ویژگی رو بشناسیم نه. اینه جمشید ودایی اصلا یه جورای اون و اون خوهرش یا مویمی به اسطلاح تو وداها اصلا نخستین زوج بشرن. هست اصلا خود جمشید هم نخستین بشر هست نخستین بله خب این خیلی با اون دیدگاه ایرانی فرق داره چون تو دیدگاه ایرانی ما اون جلسه صحبت کردیم که اصلا نخستین زوج بشر مشی و مشیانه بودن و اصلا پس از اونا فرزندانی داشتن و خلاصه جمشید دیگه اصلا توی اسطوره ایرانی دیگه واقعا داره تو وداها نیمه خداست ولی تو اسطوره ایرانی دیگه اصلا یک شخصیتیه که مثلا شما تو شاهنامه که نگاه کنین دیگه یک شاهیه یعنی در و دارن توضیح میدن که در زمانش چه اتفاقایی میفته مثلا چه میدونم رشتن و بافتن در زمان جمشید اتفاق میفته مثلا چه میدونم می در زمان جمشید پیدا میشه یک سری خوراک ها پیدا میشن یه سری تحولاتی داره تو زندگی بشر از نظر مثلا حرفه ها از نظر صنعتی تو دوره این شخص دیگه داره یه سری تحولات اینجوری اتفاق میفته یعنی نمیتونه این جمشیدی که این اتفاقات داره در دورش میفته نخستین انسان روی زمین بوده باشه این خیلی پیش استیل دورها بله آره، خیلی پیشرفته تره خب پس تا اینجا این رو داریم که یه تفاوتی بین جمشید ایرانی و جمشید هندی وجود داره این هم اینه که جمشید هندی یک موجود اسطوره‌ای نیم خدایی است که نخستین بشر هست و دقیقا با خواهرش که ازدواج حالا ازدواج که نمیکنه. با خواهرش یک بخشای از ریبدا هستش که یک مکالمه عاشقانه بین یمه و یمی این خواهر و برادر هستش یک جورایی نخستین زوج بشر بودن اینها رو به ذهن میاره و این داره مطابقت میکنه با کی با مشی و مشیانه ما. حالا من نمیدونم والله الان با این زمانی که شما به من نشون دادین میخوام فقط حالا فعلا اینجا من این بحث رو میبندم اینجا که میخوایم بگیم که جمشید داستان های ایرانی با جمشید ودایی من خودم الان امروز همین الان که اینجا نشستم یک راه حل برای این ندارم ولی این رو باید واقعا در نظر بگیریم که درسته که خیلی شبیه همان جمشید ایرانی و جمشید هندی، درسته که دوره یک دوره تلایی در زندگی بشره، درسته که بر اساس هر دو دوره اینا زمانش زمانی بوده که انسان ها نمی مردند، درمان ها کشف شده بود، زندگی ها دراز بود، دوران تلایی دوران، اصلا همین که دوران تلایی و بهترین دوره زندگی بشره با اون سرمایه جور در نمیاد. ده. چون اون سرمایه سختی که اون خرابی ها رو بار میاره نمیتونه همزمان بتنی دوره زندگی بشر هم بوده باشه درسته این ویژگی های مشترک رو دارن ولی ما وقتی که داریم دوره جمشید بررسی بررسه میکنیم باید حتما در ذهن داشته باشیم که جمشید ودایی یک موجود نیمه خدایه استورهی نمی دونم حالا هم نامی راست هم خداوند مرگه و جمشید ایرانی یک شاهی هست یک دوره هست که درش داره یک سری تحولات خیلی خوبه صنعتی و نمی دونم اختراعات و اینا تو زندگی بشر اتفاق میفته این فاصله رو باید در نظر بگیریم حالا بعدن میگم که به چه درد میخوره در نظر گرفتن این فاصله و این تفاوت خیلی متشکرم خانم دکتر عرض کنم حضورتون که یک مسئله ای هم خانم دکتر در قسمت های گذشته مطرح کردن در مورد اسم سرزمین ایران در میان اسناد هندی جناب آقای کلمی ظاهرا یک پژوهشی کردن در حد چند دقیقه این نتیجه این پژوهش رو اگه آمادگی دارن بفرمایین بعد بریم سراغ جناب آقای فیروزی. به نام خدا با دورد فروان، به ب... چند دقیقه نیاز نیست، تا چند ثانیه‌ام کافیه. نه خواهش میتوند. برنامه نهم و دهم برنامه شاهکاری بود که من گوش می‌دادم. یعنی حالا فکر نمی کنم در جهان همچین نشستی بوده باشه که از هندوستان تا منابع ایرانی و میان رودانی بخوام بیان منابع انقدر قشنگ با هم کنار هم بچینن. بله. تو برنامه نهم من اتفاق خیلی شانسی پیدا کردم چه نظریه؟ به نام نهو خانم دکتر دام در اندادای 7 فرمودن که در ریگ ویدای ماندالای 7 اومده که ایرانی‌ها و مردم ایران میگفتن آنو آنو بله بعد من کتاب شادان جامشدرخشانه داشتم یادم افتاد که من واجر یه واجاری جو دیدم ولی یادم نمیاد کجا بود تمام کتابای تاریخی همه ریختم بیرون تا آخر سر همین کتاب شادان جامشدرخشانه دیدم بله در زبان سومری به قلع و برده و چیزهایی که از آهن و آهن شهابی مخصوصاً از این اقلامی که از فلات ایران به سمت سومر میرفته به اون گفتن انا, انا. این در واقع سرزمین ایران هم با این نام در واقع بله من, من خیلی متشکل و بعد چون لازم بود این قسمت انجام چون آیم میران مهرم به این مسئله پرداختی این بهش بی پردازیم در خدمت جناب آقای فیروزی هستیم در قسمت گذشته در خدمت ایشون نبودیم در مباحث قسمت‌های گذشته هم سری مباحث مطرح شد که ایشون لازم هستش که پاسخ بدن ولی در عین حال از ایشون هم خیلی سپاسگزاریم که تو برنامه حضور دارن و علی رقم داشتن زاویه از لحاظ علمی که اینام کاملا طبیعی هستش در مباحث خیلی صبورانه حضور دارن و با اسناد علمی فرضیه های خودشون رو مطرح میکنن ضمن اینکه از ایشون قضام کنم که فرماشد خودشون شروع کنن با اسناد و بدون اینکه در واقع مباحث تبدیل به چالش و چالنج بشه مباحث ادامه بدن دود منشونندگان اصلا خدمهتون که مطلبی که در فرگرد کلا در وندیداته هست به ویژه وندیدگی و دو اینا به صورت ترتیبی نوشته شدن یعنی به صورت به هم ریخته نیست مثل خیلی از کتب قدیمی دیگه که حتی هرودوت اینا رو میشه هرجویی که سند دوره ورش بود نوشت. به ترتیبی نداشت. مثلا برای پارسی ما می‌بینیم که یه بار میره جلو، همیت عقب، هم میره جلو، همیت عقب. داستان‌ها رو مثلا بین داستان لیدیایی‌ها و پارسن جلا عقب میکنه بعد ما تا رو می‌نازه خود اون و این در وندیداد ما تقدم و تأخر رو به صورت واضح می‌بینیم که این درست رعایت شده. فرگرده اول وندیداد که آی ایران اشاره می‌کنم به چه صورت شروع میشه؟ میگه که سرزمین نخستین ایران و این جایی بوده 10 ماه زمستان داشو دو ماه تابستان خب ما میدونیم امروز در مناطقی که حالا با ها سرزمین دوم هم سوقت هست و سرزمین سوم مرف و سرزمین بعدی بلخ یعنی از شمال داریم به جنوب و این سرزمین اولی بعد در شمال سوقت باشه یه در شمال. مناطق شمالی شمال شرق شمال غرب پر شمالی تر است امروز ما میدونیم که در این مناطق فرارود و آسیای میانه آب و هوا به صوی ده ماه زمستان 2 ماه تابستان نیست این فقط در یک حالت رخ میده که شما دو چهار یخبندان نهایی یا اتفاقات چسبیده به اون در پس رفتن یخبندان قرار داشته باشید و این قضیه نشون میده که بله اینها اونو به یاد داشتن اونجا بودن و از این میخوان فرار کنن بیان پایین این مسئله اول یعنی در واقع شما اینه که در واقع از سرما فرار, فرار کردن ده. حالا این اتفاقات قبل از تشکیل حکومت اولیه ایران هست حالا با هر کی میخواد شروع بشه با. و فرگر دوم ما به جمشید میرسیم که در واقع این پزی که شما میفرمایید این اومدن تازه قبل از کیومارس بوده. دقیقا حالا فرگرد دوم، دور از جمشید صحبت نکنه ما با ستای قبلیش یا چهار تای قبلیش کاری نداریم. خب با کیومارس و اوشنگ و تحمورس کاری نداریم با این ستا این از این شروع کرده. یعنی پس از این یخمندان ده ماه زمستان دو ما تا عجیب غریب. تازه میگه در اون دو ماه نیست هوا برای آب و خاک و درختان سرد است. وضعیت خیلی افتضاح بوده یخمندان پسامتای یخمندان هم من به همین سوب میتونسته باشه حالا به فرگر دوم رسیده که جمشید هست یه چیز خیلی جالب آب و هوا بهتر هست خیلی بهتر هست از چیزی که در فرگد اولی خراب کردن ولی این نکته چرا تا قبل از برخورد با اون زمستان واحد سنجش گذر زمان زمستان باز. 100 زمستان آمد 300 زمستان 200 زمستان آمد 300 حالا ادالو شهران 300 و 600 و 900 زمستان آمد ما زمینو کوستاریش داریم، الک کردیم، بلکه شده واحد سندیچ زمان زمسانه و عدد اسطورهای حالا. وای نشون میده کشور دشواره سرماس دیگه کشور هنوز دشواره سرماس ولی نه اون سرمایه یخ این نکته خیلی مهمیه بعد دوباره برخورد میکنه به یک سرمایه عجیب و غریب که این قطعا بعد از اون سرمایه اولیش که فرار کردن چون واده مناطق جنوبیترشون که یخ به اونجا نرسید این نکته خیلی مهمه پس ما بعد از یخ بندام فعالیتمون دشوار شرق فلاتمون دوچاره با سرمایه‌های خاص چه این سرمان الزاما یخمندان نیست الزاما یک سرمایه تورمی مدت است نکته بعدی که ب... چون از اونم سرمای نهایتا فرار میکنن و کشور دور گل و بلبل گرد میشه دیگه نشون یعنی میده زمین دای دا... سرد و میشه لرز گرفته نکته بعدی در همون فرگرد اول اینا به سرزمین‌های تر میان که یکیشون همه خوش آب و هوای دریاچه داره حرات برای خودش اون یکی خیلی زیباست و چمنزار داره خب میرسن به سرزمین 16 گردا گرد سرچشمه رود رنگ ها گردوگرد سرچشمه ای رود رنگکا حالا بندش دقادر این دجلاس به خاطر آبشاری ها من فکر کنم این دجلاس خای با این ندارم بک سرزمین نهایی میرسن دیگه طی شاخه دوباره بدبختی که اونجا دو شاخش میشن چیه پس آنگ و اهریمن زمساندی و آفایده را برای جهان چیرگی بخشید باز از سرمایه اولی هم باز گذشته دوباره سرمایه دیگه سر میاد الزاما باز این یخمندان نیست دو شاخه سرمایه مختلف شدن یعنی چیز طبیعیه الزامن این سرمایه که جمشید بهش برخورد میکنن انسان قرن 20 و 21 نباید به خاطر داشته همچوش این پاس بده به یک اتفاقی در چیزی که حالا فهمیده حالا با فرض اینکه شما میگید جمشید یک شخص با یه عمر محدود 67 ساله با یک دوره پادشاهی 30 ساله حالا, حالا به همین میخوام پرستم. یعنی چندین وقت اگه به من داده بشه بتها اینا پله پله, پله میاد ببینید نکته مهم دیگه اینه که این بدبختیو عرض کردم چند بار هم و اینجا معنی کتاب حمزه اصفهانی دستم اومده ببینید چقدر واضح داد میزن این قضیه رو که ایرانیان قومی هستن که سالیان و روزگار دراز زندگی میکردن و چون تاریخ آنان کتاب به کتاب دیگر و زبانی به زبان دیگر رفت که حتی میگین چه جوری بود این خطا چه جوری بوده بیا با افسایش یا کاهش غلط روی میدهت چرا که یهودیان فلان یهودیان اینا می... انسان‌ها قبول نمیکن. در سنوات تاریخی پادشاهان ایران نیز با آنکه روزگار فرمانروایی آنان از آغاز تا انقراض متصل بی فاصله بوده بسیار مقشوش و نادرست است یعنی این آقا خودش میگه اینا پادشاه هستن مثل بیرونی و دیگران که گفتن یک گام هم جلوتر ولی سالهاشون به هم ریخته چند تا پوینت نکته خیلی مهمه می میگه ابو معشر اگه اشتباه نگفته باشم تلفظشو همچنین گوید ایرانیان در مدت سلطنت پادشاه خویش اختلاف دارن به عقیده بعضی که قوبات 20 سال پادشاهی که به عقیده برخی پادشاه به 10 سال نمیرسد یعنی این نکته که اینا آدمی زاد بودند و سال‌هایشون طبیعی یک مسئله خیلی قدیمی هست. جدید نیست ما بچون 2000 اینا رو بخوام تعدیلش کنیم مثل کاری که با سومر کردن. یعنی این نویسنده پیش پژوهش کردن تاریخ حوزه ایران، قولش رو به این قضیه رسیدن که این اعداد غیر طبیعیه، اصلاً معنی نداره. چرا معنی نداره و بچین پیدا کنید و پیدا می‌کردن. انسان قن 2000 میتونه بره کردارها رو پاس بده، پیدا کنه بگه این حالا و چیز از اتفاقی به اون روزگار. ولی نمی‌تونه مطلقاً این کارو کنه چون این حتی گزارش باستانی هم بهش و اینو رد کردن. بعد نکات زیاد هست یعنی من حالا بعد هم باید دونه دونه براتون بخونم اما یه نکته دیگه که در این کتاب چیز من دیدم این هستش که آقای حمزه اسمهانی جز اون گروهی هست که که مرسو به پادشاهی نمیشناخته به اولین انسان میشناخته یعنی این یک حالتی دیگه از اسناد میشه که یک اسناد بودن کیومرس و پچه ها میدونستن کیومرس و نخصی انسان می دونستن. و ما نخصصی انسان بودن کیوم معمولا در اسناد پهلوی به قبل میدیدیم در اسناد اسلامی خیلی کم میدیدیم ولی این از اون دست اسناد اسلامی هستش که کیومرس ها انسان میدونه نه نخصین پچ و رو از دو نفر دوم شروع می این نکته خیلی جالب بود که این آقا این اسناات رسیده مستقیم ولی خود همین آقا ببینید این قضیه که اینا چرا به دوره شدن و اینها اینا همه تو متون ما اثراتش هست یعنی ما فقرن 22 نشستم ایشون ببینید که سعی کرده باشن اینا رو تعبیل کنن به دوره به خاطر سال‌های نجومیشون اولین ردپا که بیرونی اینا رو دیده بوده در کتاب بندهش وجود داره به چه صورت در کتاب بندهش ما سه جور دوره داریم که متاسفانه در بین پژوهشگران غربی و ایرانی یک رو خیلی پررنگ کردن دوره دوران 12گانه دوازده دوازده هزار ساله در صورتی که ما دو تا دیگه تو هم بندهش در دوران 4000 ساله هستن و 7 که در اون دوازده هزار دوره خیلی پررنگ شده بندهش میگه این مال تازیان است مال ایرانیان اصلا نیست این بندهش میگه 12000 سال مال تازیان است این اولا میگه کاری با این ندارم در این دوره ۱ هزار سال زرتشت توشت دورش در اون هفت هزار سال چهارومه خب این دوره بندی میخوایم کنیم از یخ بندان بیایم جلو اولا با دوره هفتگانه نمیخونه این یک حالا زردوشو رو کنیم دوره چهارم میخواد بیخوریم میخواه به برای ناصفاف فیل های ماموت بیفته نمیشه که اینا همش با هم باید تطبیق بده کنیم ما رو یک در اونتون یک پاشن افن صفا به این وری همه رو باید بررسی کنیم که جملهش حالا بعدتون سر فرصت میخونم بعد وارد بحث جمشید خواهم شد که در گات‌ها ترجمه هشگانه فارسی به چه صورت بین آقای اشاره شده و بعد میام سر وقت بیرونی که ببینیم بیرونی حالا این همه اتفاقات و نظرات مختلفو به چه صورت جمع میکنه و چگونه مینیویسه و این چگونه نوشتنشم مهمه بله ارزم خدماتون که اجازه بدید من یک جمله از همین بندهش رو خدمتتون بخونم میگه درباره سال شما تا زمان تازه این دوازه از آسان بود میگه که خب اون سته اول او شنگ چل سال تحمول سی سال کیرو مرسم که اینجا اصلا دوتای اول کیرو مرسم اینجا این خود سین انسان حساب میکاری باشه نداره میرسه به جمشید شیستر شانزده سال و شش ماه حکومت که پس از آن ست سال نهانی بود پس هزاره خدایی به کژوم آمد نجس که دا این رو داری این آره هزاره میکنه همه این چارتتم مثلا توی یک هزاره و زه هزار سال پچهه ای کرد بر هزاره خدایی بین نصف رسید فریدون 500 سال پچه ای کرد یعنی ببینید اثرات تبدیل این افراد به هزاره از اینجا داره شروع میشه چون اینا وارثان عرششی با بکنن این دستکاریایی که کرده حالا اومرا اثرات اون دستگاهیدار نشون میدن. نوتای به هزار و اون کی میگم چیو میخوان رو, رو, رو, رو و یعنی اسناد قبل از زمان اردشیر بابکان اصلاً اینطوری بود اصل بعد دقیقاً که این کاغزپارش به دوران همزه اصفهانی هم رسیده به دوران بیرونی هم رسیده اینه خیلی نکته است شیمان فقط نباید بخوایم خاطر اینکه الان راه گریزی نداریم بیایم اینا رو دست ببریم بالا و ببینیم که اینا دوره اصلا زمینی کردارشون قطعا میتونه مربوط به یک دوره‌ای باشه این اگه ما بافندگی عظیم می‌بینیم یا طول یک فلز عظیم استراژ یک فلز عظیم رو به یک پادشاه پیشدری کیانی می‌بینیم قطعاً اون نمیتونه مربوط به اون پادشاه باشه اون باید به دوران عصر مثلا فلز فلان در فلان هزاره ایران باشه در فلان سایت این ما میتونیم باش بکنیم ولی این که بخوایم بقیه قضایای حقیقی رو پاک کنیم به خاطر این قضیه نه نمیشه هیچ جای دنیا با تعریف حوزه های تاریخی نتونستن استحکام ببخشن به یک مطلعی مگر که در اون دوره یک سلسله یک پادشاه بتونن تعریف کنن بل. خیلی متشکرم جناب آقای فیروزی ما دو یا سه دقیقه با آقای فیروزی اضافه وقت دادیم چون اگر این دو یا سه دقیقه با کردیم کریمی می‌دادیم چون بحث جدی نمی‌تونستم مطرح بکنم به خاطر وقت برنامه‌ام رو به پایان هستش دیگه بحث ابتل می‌موند به خاطر این از آقای کریمی عذرخواهی می‌کنیم برنامه بعدی در خدمت ایشون خواهیم بود و مباحث ایشون شنوندگان گرامی قسمت بیستم برنامه ایران وج اینجا رو به پایان هست شما شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 21 به خداوند متعال می‌سپاریم خدا یار Oh <laughs>